كتب باشترين هاوري خواند نوي كتبو قران بنيو حكمتكاني نوسيندا كتبي چشتي مجاور نوسيني هجار مكرياني خواند نوي عميد علي گمار کردندی دلیر سلیم گیرانی عزیز او خوشبیست شودان شد <متصفح> خوش حالی لباسی سی و کمی خن نویک تی بی مکریانی حتی نوLATAN فرمون حاوری من بن حزار مکرانی لوې کبه سرحاتی ځانی خوې د جراتو د چینه سرودری کباس لودکا الله بغداوا بره د کی وبرو شام بووی هیڅ نبی لګل حوالہ کنیده کاندیکن لحسب شیوبون بجداریل ل 20 والی لاوندک حزار د نو سیټ 11 کسمن بسوڑی اتوبوس بره کوتين بره گی چولی شام د کوتينره ل سוריה حکمی شیشکلیبو شری لجوهر جوهر قاچقتر گیش دینه حوال پستی ریوان سוריה کناوکیم ل بیرنماوا و بزانم ابو ششاماتبو چمدانن پشکنین پر لا اگالی عربی و کلاشو خنجری کوردیو بیانت سئن بخو بپار یم دچین سیران ل لبنان و ل سیاست دورین کابرای افسر دایگو هر او کلاسر بیانکان وسراوا وطنی آزاد و گلیبختور کلجی بسم الله ل شعیان شایاتی چا با جره نجات من بو توزگ لشام مینه و چوین بیرود دبویا ویزهی اوروپا ورگرین لسفارت ایتالیا پرش پرسیار و زور کابره سفارت که عربی لبنانی بو پرسی با چی دا ایتالیا؟ وتم با سیاحت واتی که دا وتم کس؟ واتی باشه؟ نبه دبه یکی که بناسی؟ نشو لام دا یوا؟ ببخشو بیرم ملیک فارغ دانستم که لجزیره کپریه دستی کرده پیکنین لو بینه دا سفریکی شام کرد که دو ساعت رایه چوم سراغی برایم نادری کونه ها و علم دیت موا. لی پرسیم چه دا بوم جه و. و تی؟ تو هیچ فکر نکه یوا پاسپورتی جعلی دو سال حبس لسره من قانون دزانم ام جار و دوی کلاوی بابرده و توی ندابو دست لکاس پی خود برده من خواه شکر منیش پیامد که که برایم؟ للیلو مجنون وحشی بافقی دادلی، باو که مزنون نصحاتی کراکی دکل. دست للیلو برد وره نو خومن. مزنون لوره می آگوطی، ست کیاوم لسر دلع. چون هستم؟ صد چقلم دپی و چون راکم؟ هیندم لو رگیه دا غر داوه تازه گرانوم هی هاته. تو که خوش تازه عقل من تازه سرطای کربون ما، تا ما اوم ایتر رفیقاتی اقلا نشناکم کوتو شالواری که حاضرو شاپوی کی پوشم کریو حتمو بیروت سوری در جسربانی کشتی سامسونی تورکیابوین برو ایتالیا چارده لاوی لبنانیش هر بو ویستیوال دهاتن حوالی نو کشتی بون دگل افسره که تورک قصه خوش منده کرد دیگود پیغمبر افندی هر نحلتی لعربو چینی کردو شوی حوتی جولای بو بحرکوتا فرتنه جگر لکرکرانی کشتی من نبی همو کس گیش بو در شانوا لپس تا پتومان بسر نخوشانده کرد عراقی یک بدم دم نالا و دیگو آفریم کشتی هزار پیر جنیانانی قون زلی لسره چون قون نبی حوت رونجو حش شو لبه رابوی افسره که دیگو دیگو دی جیان لجیانی نو کشتی خوشتر نیه وتم تم کشتی وک بیابانی که بی آودانی دنجی کلا شیریک حپ که را چوزانم، حاقای گامیشک نبیستی، خوشیکیل چی آیا؟ دیگود من بیرم لوشتانه نکردو توا، بیانی گیین ناپولی، شون من لقه تاری روم گردو چوین ناو شرک، برسین بو چوما بر دوکانی ساندویچ فروشک، دجوره گوشتی لیبو، ایک یان گرانتر لویدی، با اشارو اکس حالی کردم که با نرخک گوشت کرو، هرزانک گوشت باریینه، پیاو تابوی بلوی شتی باش بخوا، دو ساندویجی گوشت کرم و برگ از ده حواله عراق خانم گوت و ربو ایمش لو خود بکره پاش خودن اول سر خوردن و وتم کورینا با راستی گوشت کر بلزته بو به حقو حقو یالنجدار بو به حقو حقو یالنجدار وتم مترسن او گوشتی کری قبرسی بو لناپولی سیکلی کلمه فربم پینه واتنان آکوا وات آو لقطاریش لدرکی آو دست نسرابو ریتی راتا ترم ترمدوه نانو او ریان دزانو دان آمینم رئیسی ایمه اراقی کان کردیک بو بناوی غفوری میرزا کریم با کردی قصی نده کرد کشووینی نبه عربیشی هر پلخور ده کرد ددگوت کرو گوی شل دخوا حسین هورامانیه کش بو ک اویش پیشترم بو بله کردم رئیس لبیرود گوتی او سر و سی دیناری دوتانه خرجی راگامانو کریشت لسر حزبه ببرایاتی و بشاریکی وک یک دخوینو راد بیارین لنو شیو عیده فرق و جاوازینیه روش یک لسر کشتی کوبو بوینوه یکی لمنی پرسی تو لفیستیوال داتوی چی بکی وتم اگر بتوانم حواره بو كرد و کردستانی لی قومو رئیس هر چی؟ کرد؟ کردستان؟ حزب قد و رازینیه منیش وتم بر لبغدا قرار درام من هر لر رگا رقال تان کو آزادانه بیرو بروان در برم او شوتی د دې انقسا قوا را صالح دیلان جوای گوته هرتا صدر یا بریکرد د بلای کردم کوردم خوڅانی و تمباشه باب زنین چون ده به دعوت نامه رسمي حزب شو ام پی بو کبل درب قاچاق قاچق بودبو ل ری بشرمه زبیهی لب بریکردنم دا گوتی من لا ارسین لوپینو زور شد فیر بو ورد پیچه او دنیوان توی پانتول دا لپشت قون و تا کرد. کچی بنا شکری نبه، لأسکندریا که دا چو مصر کشتی، افسر پشکنیمی زور زودی تیه و. زور ترسم، پیکنیو دسته که لشانی ده. برو بسلامت، لأسکندریا بودو سعا چوین شر، برلو چوار دینارم لپشت جل کرین و بیروت مابو. اویشم دابو با جناب رئیس، دگل دا کورک دابزین نامی دا پوست خست، سواری تر موین کبه شره بگرین ل پردیتم کورنماوه نه زانم ل چودا بزيبو پینځ تعریفم کدبه تقرانیک کنهبو بلید بر هات بلاموه خود میسم لگی فند کردو غوتم پولم نی وتی تاکویچی ودم تا بندر ایو شوتی بخورای سوار به دسته کنه د گل رئیس کاله کو شوتی زورین قربو خو لهند یک برای حزبې جل کردبو هر لعظه ولو بولاو پیدا بو که منیش یک لبشخوراوان بوم به هزار ناری علی دو دینارم لرئیس سنده و که نوک دیسان بو بلید دامینم لعظه روم دبوای چانوری من بکرده تاثره که لوانی روم دیو لسر حساب لوان دامن دمزرینه دا چما دانو هندک پرچه برو شتیوه من لدوری خومندانو لسر عرض تخط دانیشتین زوروک خیلی قرز دسوین هرشي دايه پرسي چن دم گود جبسي، قراجين، ديانود، كاري او من هيا، لكياه پرسين، امش دمان گود، آي لمن تان كوه، ادي اما چين، لحنباله كي ازغن پرسي، ريتي راتا، ريتي راتا، سريكي راوشان، ريتي راتا، بشليكا و گتم، نخير تيان خوم كور کرده و نقاندم، پيا كاني، ها، ريتي باقامک تیگندمون جمعری از دعو دسته، لدرجای رو آنیم اینا بندی که وکمالی شه، چند کسیک لبر شیرا ریشاتشن، ببیوند به دلخانه، که چو ماجور زنیم چند عودسته کیشیله، مزجیم داو با کامال ران کرد، هیلوی زوگاتیو الخونره، پس نیاوریشی درنگاتن بردنین لشکرترین اطیل لبنان و پلازدا مزرین، جمنان لسلواین ایتالی. شوانش یک یک دبو بسرگلو دچوین چاخانو چایک من دخوارده و گوه من لماسیخا دگرد بروش با کولانو خیابان دا ویل دبوین شاری رومم زور جوان بو تدگود همو مالکان خیابانیان با مشار خشت بریوا بر همو جیگاوک یک دچون کاتالی زور هنرمندن لهمو اقاران بو بونا خشت لیشار و جیگ چوم رستورانتیک لیستین بو هینم هر تقم لسر یو دهد ده توشی وشی فراید فیش فی دستم را سرد دانه، بله ماسی سورک رایوش خراب نیه، خواه او ماسی مندم ناسی جورکی تربو، او پارچه چکالا و لکالا، هندی کن لرانه چه لکادچن خواردم، خوش بود، لحات ندارم ده کره کی گوتی تی پیکا و درون لاره منی شرب وقت تو بوقم خورد. عبدالکریم شیخ داود ناوی که حقوقی بولجاتی سی دینار پنجا دیناری دا بو داوی سابونی دکرد دا کراسی پی بشوا قانون نگرد ناچر من سابون بو کریو اویش هزار جنوی بدزی بو قانون دا بگل شوین بو واتیکن سرم لکاری کلیسی سانت پتروز گیش بو بو چاو با موالاق دمروانی میچکی که دستکاری میشل انجیلیو ماشاللو به بهم دگو حتی بخمزانی لگل بجه معم فتالیه کشم پیه نبو گیه جو حول دخول آمو توشی حوالان نبوم تازه قوم آو قوم آمو. با تیر سیر بکم ویستم بچم موزهی واتیکان پاره دویست نمکره لدرگاه یک دو پاسوان بجلی رومیانی قدیم رم بدست و وستا بون حد شجنه کی رشی وک قیلی تدابو کرنوشی با کراو درباز بو من ویستم بچم ل لدولاو تک پرینو ریگم ند در باش نرش دا پاپ حتما و خیابان سوار اتوبوس بون بلید بر حت فیربو خود نویسیم را داشته کزانی چیمپینیا بلید ایدامه بیرن لوه کرده و کابرای مصری لدولت دزیو پیاواتی دگل من کرد اتالیا که لگرفان خوی زراری با کشم پاسپورتکم کم به عربی نسرابو که خوانی تا سوریا و لبنان بچه اگر به با انگلیسی باسی اروپای شلیه نسر ایبراهیم عبدالرحمن خال که اویش حوال بو او دا, دا بلي بلي. با عراق و تی خود به دولمن نیشنده جلکانی شد برشه چوی خدمت خزمت سفیر منی زگزلی جل باشی به ملیونر حتی برچو منی تا توانیم فروفی شالم که حتا ادریش داشم چند روشی گرائد بیارم بله بله کری نیر نیده کشه پاسپورتی به انگلیزی نوسیو اتری ششی خست سر لخوا حافظی دا فرموی بیره داوره وا. با سان به خدمت بگم. من گوتم. جا چون تا دیاریگ با آغازه دکن نهیانم دچمه وا. چون سفارتی آتریش. کچه گوتی. با نیشانانه سری ساعت پینج ورن فلان اپارتمن ویزه ورگرن. پینج دو دقیقه کمچوین. داخره بو. راوستاینو دروانین ساعت دو سانیه ما بو کس پیدا بو. برایم گوتی. و منزانی نای. گوتی وقتم نکرد ویزای تایبتیش من لسفارت رومانی ورگرد که لپاسپورتان نوسرابو، تا لعراق نمان گرن. پاش چوار روش یا سه روش با قطاری تیری زیارین و ریکوتین. چند ساعت یک لحظگی وینیز مینوه بلام قانون نگرد، بچین او شراجوانه ببینین. نوشابج بر قانون سفر ندکود. یاریده لبنانی کنم دا چمدانم دانم لگل ویستاوا، هم بال یکی نوشابه که بکرم، شودرنگ یکی چونه شوینک للاوان لاوان هد نردین یعنی کلیو بخوین چکو هراو بلیارد کردن بو در زید حلاوشتای ندکو تا عرضی یالله هستن چمدان حل گرن دتن بنا باش چمدان بدستاواش شوک تاریک و سرما لمندوی آرقمن کردو گرانی اسمهانم حاتبو و بیر کداله شوانی خوش رابوردن لوین چونه میوان خانهی که قشبیلا لناو با نان اندای نه و بیانی نانو چمن خوردو گوتيان بروین بو بهره وتیان تا جوانان پولی اوا ماندانی نا به برون تلفون لسر تلفون جواب نبو خوانمل وتی یک یک به گریو د و تا پولی مدریته ګرجه چوم او لاو ګتم من به گریو د من مو بخيال ګتم دو سه روزه د خو مود خوم من بلان پاش دو ساعت آزاد کرامو برځین مو لای هاولان اما و لبنانی و جولک و مصری و اردنی و نازانم کهیدیش با قطارک و رکوتین لسنوری مجارستان و خلق دهاتنا پیاشوازمن لشوینه کوری که لبنانی و تی نوتق دکم دست با عربی دلی آو آو هوا هوایا هرچی باور نکا آوی سهر دخواتا بو بحراو چپ لرزانی جوگ را خوشویستکانو پیکنینی اما شعری که جولک بناوی حنا ابو الحنا ک عربی ق ساکر لنزیک م ابو زرخ سخوج بو جری گوتی او هم دولت عربانه لهمو شد دج یک ترن بلام لجنوب اسرائیل دنده یک صدکن لبوداپیس ساعت یک لزگ ماينو سرو پاکت کی سندویچ میوان دینه گشتنه شریبو خریست عراقی او مصریکان ل مدرسه منزل منگر ل دا ورزشکار کی سربیا توکی مصری د ویست سر درینه میزنی شخونه کی د قطر حل ده شوشه خرمای کردو سره کا چلکی چیل نه هات یک یک لمسریکان تح سماکری مشهور بو دسته کی میوزیک دغل بود بدانسته حالت بجاردون زربین رش او لاو یو یکیان یک چاويش بو لقطر رومانی ده دوج نه لادی حت ناو واګونه کمن مرجکو یلکان د برد با اشاره لمرشکو و بوا تا گرستانو اوشتانی لره دماندید پرسیارم لجنه کند کردو دم و توانیم چنوشه که زور لازم فرم. بم لو پر سو جابانه دا پولیس یک پیدا بو جنکان زور ترسن در پرینو درسم ناقصی ما بیانیان همو من دا جوری کنان خواردن هر چیزو نگهی بایا بشی دبرا من لسينما دا تحيام زور بجوانيه ديد بلان بيانيان کنه دا پرجاء لتاوينانكي سوراو سپياو بكا شلازر ديگ بو بيزد لحل دستا نيوه روش شو شامانه بو دا چوينه رستوران دا بوايا بستو دو روش لوي بمینين دا بوايا همو روش کوبينوا حيئتي دولتك ببینين كدهان گوت هشتاو دو ملتي ليا زورزو منواز مهناو لدیتني گشتی دا بجدار نبون روژانا بشارده ده گرم. توشی هرکس بام چند کلیمه ای که رومانی لفرده بوم. لچاو حوالانم زمان زن بوم. زورکاری خون پیک دینا. شوانه ده چومه سینما یان تو اتر. بو او شنانه هرکسی حقی بلیتی که بو. من که بیمیستایی که کتر دگل خون برم بلیتکم ادا بو. کلاوی که سورو شینی سولیمانیانم ده سر ده هر زور رگیان ده دا دامو بلیتیان نه لون نرنه حتی بونا بخاریز، جنی ایسلندی و پیاو بلجیکی لهموان جوانتر بون، لوان برجرتر فیلندی بون، با ایتالیا جوان کانج و کویناگران فکر مدا کرد دوا. خدا لدرس کردنی نجادی سپی، بچه ویشینو خجی در دوا بوتاوا. رشی آفریقای و گنم رنگی آسیایی درس کردون، تو زک لهر دورنجه لگ دوا. ایتالی بچه کالو، خجی خرمایو، رش الی ساز کر بگرانی از این رو خوشبین است. لرده حتی نکوتای بچی سی و کمی خوان نواک تبدیل شدیم جویی حجاری مکریانی تا بچیگیتر رو لشیگیتر داریم تندگی نوا شوتن شد جانتن اهرامو بختوار.